الحمد لله رب العالمين صل الله على سيدنا رسول الله و آله قایبین و آهرین الله از و رشوه که به حجت مش و روایات هم از طریق صریحه و مستفیدن معرف شده است را بر آیات هم شده ادعا شده که در و روایات و اجماع در مساله مضاف به حکم عقلی کوچه دل علی آیات هم اصولا مجموعه آیاتی که ممکن از ما به ما رفت رب داشته باشه دیروز از کردن سه سایه تقریبا به ما رفت رب داره که در روایات ما احتمالاً اشاره به سه باشه احتمال داره که اشاره به این هدسه آیه باشه یکیش آیه مبارکه لا تحکل و اموالتون بینکن بالباطل و تود لوبه ها ارالفکان در اینجا بعد از این که حفل مال بباطل شده خود رو خودش دلو اون چیزیز که اون چیزی که در چاه میفرستن که آب باشه میکشن بالا اون رو اصطلاحا دل میگن ما بفاستی ایسی دیگه میشه سر توی مزد مثل سر توی حالا سر توی اهم اون دلو رو دلو در وقت عربی که باشه آب میکشن دو جور دیوزم اشاره کردن که بعض خواست در لوقت عرلیت اینا سماعیه دو باب رو استعمال کرده، هم باب سلاسی مجرد هم سلاسی مدید میگه عدلیت و دلوی این سلاسی مدید عدلیت و دلویت و دلویت سلاسی مجرد این جول استعمال هم این نادره در لوقت عرب، خیلی نادره این به تول کندی این یه فقط متوفق در سماعه و قواهد نمیش درستش هم خبصن عدلیتو که با افعال باشه یعنی درو داخل شاه برستادن اما اگه باییم دلوتو یعنی از شاه دربوندن خیلی عجیبه این سلاسی و مجرد در اینجا تو داخل شاه انداخنه و دلوتو, دلوتو دلوتو دربی یعنی از شاه بیرون کشیدن بیرون کشیدن در از شاه سلاسی مجرد درش کار میبنن این نکته تود نوبه ها یعنی شما با این هموالتون مثل این که در چاه مثلا میفرستین چون باب افعال اینجا شما با اینها در از طریق حکام چون مثلا شما دربتون چاه میفرستین که به مطالب خودتون داردید با این هموال هم سعی نفید مثل درب به حکام نفوذ بکنید و به نقض خودتون حکم بگیرید کلمه حکام ها گاهی به معنای عمرها و فرماندهان، پادشاه و امیر و, و سلطان، گاهی هم به معنای قاضیه ولی لحاظ تاریخی عمر بن می یعنی جل جو حاکم. سلطان در اونجا مراد قاضی. گاهی به معنای عامی که شامل قاضی دون می شه. و عمرها هر دو میشه. و خود لوبه ها اهل الحکام اهل مال به واسط نکنید لا ترتب هم کن. یک مردی ها رو قول ملنقفی شدن که اگر ما مثلا از راه حرامی معامله انجام دادید یه اموال ما نیست این ترکل و اموال ما یعنی آکه با مال باید یکی باشن را ترکل و اموال ما اصلا که خب جوابم داده شده که مراد اکل همه اصلا یعنی در جامعه اسلامی سلمان ها از یک دیگر اموال به نحر حرام اموال خودشون رو به نحر حرام نرو انتقال نده ارز کنم که من سابقا ارز کردم که غیر دلوقتي دلوقتي دلوقتي من از این نقطه که در توسی ها آمد اجمالا ارز کردم سابقا ارز در لغت و قرآن یک نقطه ایست که باید در نظر گرفته بشه و اون این که خیلی از مفاهیمی رو که ما اسطلاحا امروز حتی در اصول از اونها تحبیر میکنیم به احکام مثل ملکیت اینها در مقام تعبیر در خود آیات یا روایات به تعبیر مولوی آمده این رو یعنی یکی از نکاتی حالا مثلا گفته شده لغت عرب در زمان نزول قرآن لغت قانونی نبوده اصلا در عرب قانون رس نبوده درست هم از این درست به اصلاح حاکم رئیس عشیره هرچ این گفت اون میشه اصطلاحا میشون قانون غیر مدرن اصطلاحا میگن کیش شخصیت، شواه شخصیت حاکم. اصلا فکر قانون این است که قانون از حاکم جدا بشه. از شخصیت حاکم جدا بشه. این قانون این هر وقت از شخصیت حاکم جدا شد میشه قانون. حاکم خدا حاکم باشه. در واقع مثل فلسفه و توضیحاتی سابقا عرض کردیم جامعه عربی اولا بسیار جامعه ضعیفی بود یعنی مکه و مدینه. جامعه عربی اینجا مراد مکه و مدینه مثل یمن نه هم به سفر از اون قبیله مثلا سمون مثل اش... حالا وارد بحث میشن میشونم خودش شعبی داره این قبیله به اصطلاح ما بین مدینه و مکه هم ضعیف بودن هم روح قانونی در اونا حاکم نبود حتی نه شده شاید هم همینطور باشه اما چون که ای این هم مخانم گنده بکنه با اهداف غیر سری اصلا باز بین مکه با مدینه پر بوده در مکه بیشتر همون حال هستی که استرها همه دیکتاتوری و هیچی نبود دیگر که شدید برای خود رئیس عشق رئیس بنی هاشم تصمیم می همون میشه اما در مدینه یه نوع روحا آزادی به اموزوی دموکراسی دموکراسی که برنه حکومت مردم دیگه کلاسیمی حکومت دماغند حکومت مردمی در مدینه یک مقدار مذاهر و کاریه ها بود این امرو هم شورا بینه هم به اهل مدینه است. و امرو هم شورا بینه هم بودند بودن که انسار که در مدینه بودن یک نوع حالت شورایی داشتن اهل مکه اهل شورا و شورا این حالت اهل شورایی به این معنی هم هم در صدیفه اهل مدینه اول مثاله مننا امیر و, امیر و شورا آشورا هر کردن. که آشورا اهل مکه به دستور عمر عواقب اومدن تو بحث قلدری عمر به سر ختمش دادن به اون جریانی که پیش اومد. بیا خب لحظه‌ای که بیعت کرد نکرد مثلا کوچه میشه به این حالن. حالا میگم چون ایده اینو گنده کردم چه از مشاورین چه از خود ها من نمیخوام خیلی اما اگریم. حالا وقتی ماهای حرامین خراب کردن 1500 خب ببینید قانون نامدرونی بود و محدود بود نوشته نبودید. گاهی همانش... اجازه بذین من هر کلمشن موسیقی میشه گفتم گاهی هم قانونی میشد که میشد که نوشته می و ولذا پیش اونها کلمه قانون با کتابت یکی بود کتب علیکم و سیان این کتب علیکم و سیان اون رو همه تفکر کنید نه نبوده نوشتار نه نه اجازه رو فهمه نه اجازه رو فهمه. فرهنگ قانونی وجود نداشته وقتی فرهنگ قانون نبود میاد تو ادبیات قانونی میاد تو ادبیات تأثیرش چی میشه؟ تأثیرش این میشه که تعبیر تعبیر مولویه که دستور میگه اما مراد جدی مولوی نیست، مراد جدی وضعیه مثلا لا تأكول و اممالکن لا تأكول و, و بسیقی نهیه اممالکن این مراد جدی لا تأكول و اممال به باطله این سیده اینه اینا امالاً گفتن چون قسل لا تعکلو مخاطب کیه مخاطب فرس این ذهن مثلا این مخاطب لا تعکلو به قمار خو ضروره این که قمار که پول اون نیست هم مالکون بالواسل نشی یعنی اینا نش شگر شگر میشد متفید نشه شگر میشد که اونی که میخواد آكله همون مال خودشه از اون برای میگه مال اون کی نیست مال اون نیست که به قمار درورد اگر مال اونیست چه این آکه میگن نخور مال رو اینچه مال اونیست هستن رضا به علمه ها سالب چه نرگیه این مثلا این چه سنف نرگیه وقتی به شما میگن لا تأکد و انبال کن بین کن بالباطل یعنی شما مثلا از غمار از فروش شراب پولیو در کورید اینه نخوریم این نخوریم چی؟ این <تصحیح> نخوریم این مال توریست کنیست بخوری و نخوری؟ رو که من مثلا که می سکید مجمل مطرح کردم مراد شبهه اینه مالک مال با اونی که در آخره یکیه وقتی این مال از راه حرام مالش نیست جواب شده جواب عفرم می سکید بود مجبر گفته جواب شده که ناظر به هیئت اجتماعی سن. نه به هیئت تربیتی لکن به نظر من جواب اینه. اینه که اینا سیغه سیغه اینه خب الان علمای ما مثل من خودم دارم مثل آهیه. خویی دیگه مثل مرموهای خویی مثل مرمو نایینی خصوص همه آقایون مرموهای آزیا مثلا آیه مبارک مثلا حدیث مبارک ایا که ان تحرمه الا من المواقی تلتی ایناها لا تحرمه الا من المواقی تلتی به سیغه نهی آمده اینو میگن درست سیغه سیغه نهی این تکلیف درسته لا صله ديار مالايک اللهمو میگه تکلیف نداره شما یعنی شما دار مدار مالایک اللهمو نماز خوندین شما ایجاب نمیکنه تکلیف نداره به هر کی در مدار مالایک اللهمو نماز و نماز بعد اعاده نکردین به خاطر فوت صلات شما راه میکنه نه به خاطر در موی مالایک اللهمو نماز خوندین لا صله ديار مالایک اللهمو یعنی الصلات بیار مالایک اللهمو باطل است مرادش یعنی و در مالایی اسلامو مانو و لذات مشهور شد در اصطلاح آقاییون مثال من خودم می کنیم شبهزم سابانم رو ارز کدم شده که این عوامل و نوادی ارشادیه این مرادشو که این یعنی ظاهرش امره ظاهرش نهی که ظاهر امره با چی باشه باید به اصطلاح مولدیت باشه در اینا مولدیت نیست حالا من به جای تحبیر ارشادی که رو گفتم این تعبیر قانونی رو به سیره تکیش نبینی نه رو به سیغه ورد ببینی یعنی ورد او مالای سلحون مانه اومن اصلا ببینیم لا تأکدو امالکن بینکن بلباته چون سیرام لا تأکدو اینجا عاملن خطاب تأثیر نداره خب این رو بگم این یک مجرد تعبیر یک تعبیر بانید در اون زمان آن ما چی میگیم؟ میگیم لا توان کرد اموال به باطل اینجوری میگیم مخاطب رو نگاه نمی کنیم دقیق ترمولیم میگیم اموال از طریق باطل میرکش اموال از شاهی که مالیت دارن از طریق باطل میرکش شما نمیشن اینجوری میگیم اگر طریق باطل بود نمیگه این حیثیت خطاب رو نگاه لا تأکرون مثلا مثلا از اووبل اوو. الان صیغه خطاب داره. میگیم این صیغه خطابش ملحوظ نمیشه در قوانین. میشه که میگن کانال لال با بسیار میگن کانه که اخبار مازی است و خدا زمان ملحوظ نمیشه. چطور اونجا ولن؟ اینجا میخوایم بگیم خطاب ملحوظ نمیشه به نظر ما تفسیر. چرا؟ چون این یه نکته قان در زمان نزول قرآنه. این نکته قان لیکن نه قانونی به معنای به اصلاف هرهنگ و نه تعبیره, تعبیره به جهی که من از سبب باطل نقل و انتقال نمیشه نمیشه لا تأکل بسیقه نمی آوردن بسیقه خطاب می اما مراد جدی نه نیست مراد جدی خطاب نیست مراد جدی جدی اونه اصلا جمعه خطابیش خوب خود خطب کنه میگرد این در زمان عرب این طوری خصلتی داره چون که چ جامعه عربی جامعه قانون نبود ما مجتمعه قانونی کنان در بابل بابل کنان هل راشد جهان عرب رو بخنه بود قانون همورابی 4000 سال قبل این قدیمت این قانونی بشه در یمن پیدا کرد. ما مشتمعات قانونی داشتیم خود یونان در اهل باستان داشته یونان آسل داشته اما فرصوی مثلا دییم که به خصوص مکه و مدینه نداشته باز مثلا تو خود ایران باز هم نبود با اینکه ساسانی ها رو اون همه از من داشت این منافات نداره اما خیلی از کشار ها مثلا زخانه ها قاملسوسی نداره مثل لارستون حجاز کشار بزرگ یارون قاملسوسی نداره این یک روحیه یک فرهنگ یک تمدن یک فرهنگی خاصیست یک تمدن خاصیست و حال من خیلی وارد این بحث نشم لا تاکولو بین اموالکم تا یک من میداریم دو مورد در قرآن داریم لا تاکولو یکی اینجا سی که هم لا تاکولو بین اموالکم ب... بین به ام بلواطه الا انتکون تجارتا انتراز بله اون یک سوره از این در سوره بغنه است و توز روبه ها علاله حکام این تفسیر درشه شده البته این اعای مبارکه ایک سری در قضاوت نیست حکامه حکام ممکنه شامل غازی بشه ممکنه شامل عمران اموانده ها و مسئولانه بسیاره ایسی ازاره وزیر اینا حکامه تا میشه به یه وزیری بخواد خوب بده در این که راه باطلی گره بشه. و خود روبه هایل حکام لکه کلو فریقم من انبال ناس به باطل بله اسم و انتون دارت بله اسم و انتون دارت این گناه به صورت گناه میشه که شما بخاین که این اموال رو مثل اون در یعنی شما که عندنا ما در اینجا اینجور تصرف شده که عندنا ما شما این پول رو مثل در که شاه آب در بیارین این پول رو میذین به جناب حاکم که نظر شما حاکم میکنه این پول رو که میذین مثل در و کل جوبه ها اهل الحکام البته اینایی همون که ذرافت های دیگر داره ان شاء الله بحث ها من متعرض میشم که باب ها در چیه در که الان نخیش آیه درمومی که در اینجا آمده که به درد میخوره و من نمیه کن به ما الله فا هم همالکافه هم به این هم تنصف شد درمام رشنی در بخ که این شان توضیحش هر سایی آزی هست ترمومی دیگری که به مناسبتی گفته شده با تفسیر آیات مبارکی صحته ما در قرآن کریم راجب سود سه مورد داریم که بعد هم احتماله یه لفظ کم استعمالی بوده سه مورد ما در قرآن کریم داریم هر سند تو سوره ماردن که من آخر ما نظر این قرآن سوره ماردن و یکی در آیه 42 است این آیه 42 قبل اشمال یهوده به شدت به یهود حمله میشه من جمله این به اکلی همون یک یکی هم 62 و اونجا هم صحبت آمده در همون صورت اونجا ظاهر اولیش یا اهل کتاب یا لذین کفرو در رو. از, از از احتمال اختصاص به یهود هم تو شد که اونجا هم باز اطل همون صحبت اونجا هم کلمه صحبت آمده و در روایات در اون آیه اول لا ترکل اموالکن بینکن بلباسه در بعد تفاثیر آمنه مثلا باطل رو مجموعه اصباب محرم گرفته خمر رو و در اصطلاحشون این من توضیح دادم ادهی گفتم با بار مقابلت مثل آیخو اینگه با بار سببیت ده. و ما از کردیم ظاهرم با هر دو رو میگیره نه احساس به مقابله داره نه احساس به سببیت داره در تفاصیه این یعنی که در ذیل آیه از وعز از اهل سنت آمده اونم هر دو هست یعنی هم به سبب باطل مثل ربا. هم به مقابل باطن اصبح پول در مقابل هم نه چون با این صلاحیت داره. این این این با بره نو معنی 14 معنی روشن نیست ما به ذهن ما همون همون با بسیاری یه معنا داره کنم اصاب باشه یا الزاف اونم هم چسبوندن با یه معنا بیشتر نداره این خودتات که میگن از جایبی اصطفاله میشه الان با شعنش اصابه این طور نیست به باطل شامل هر دون میشه هیچ مشکل نداره که و گفتن پس یکی آیه تو دوبه های من لم يحكم به ما انظر چون موتن بهشی که میگه ده یهکم به غیر ما انزل، لم یهکم ما انزلاله. یکی آیه مبارکه سخت چون تفسیر شده به رشنه هم خود سخت یکی آیه مبارکه غلوب چون ما غلوب در خود قرآن داریم خود غلول جزله که دزدی از چیز باشه غنایم باشه الان در اصطلاح بیشتر غلول دزدی از غنایم که جزو <تصفح> کواهل حساب شده یه دزدی عادی تو شهر داری یه دزدی سر گردنه داری اون اونو به حساب مهارل میگن یعنی به اصطلاح دزدی توی شهر یک حکم داره دوزی توی یابون اون میگیره این رنگی اونها اون وقت باز انحاء دزدی هستی که دزدی از به صلاح غنائمه در حال جنگ کسی که داره اونا رو به این غلوله غلول اینه و این خودش تدباه میداره چون در قرآن دارم من که به ما غل یومال قیامه به ما غل یومال قیامه به ما آیه غلول هم داری این چهار تا آیه روشنگ و امکان احتمال تفسیر رشوه به این چهارتا آیه خلون چطور چون خیانت هست چون خلون معنی مطلق دوزیر هم هست این نوع که انسان پروی با حاکی به نظام حکم کنید و من یقلون یه, رو یه, رو یه رو. و این خلون شده با مستقلی یه اهمیت خاص خودش داره در کتاب محطه مالک که که ها مائل باشن ایشون اصلا یه بابی قبر دارد در محطه ماله که زمان یکی از ابوابش و اساس شماره که من دارم که شماره بندی شده ابوابه باب 309 کتاب مبارکه مالک باب الغلوله حدود 40 صفحه این, با... این که من با شرم 40 صفحه روایات متعدد در باب رو آورده اون هم به مانند نحوی ارتباشون ما اجازه حالا ارتباطش رو ثابت بکنیم یا نکنیم باشه بحثی که در خلال روایت این راجع به آ... آیاتی که الان اجمالا نقل شد راجع به روایات هم انشالله میخونیم من فقط الان اجمال دهست خدمتون ارزو کنم این صافا حرمت رشوه ثابت اون نکات اساسی که میشه گفت اینه میشه اون مسئله که به نام سنت و خریزه ما رو اینجا هم بیاریم مثلا بگیم رشوه همون ادلاع حکام بوده در تیغمبر توسعه داده در سننت تیغمبر توسعه پیدا کرده این یه نکته نکتهی که حیدی توی این بحثه مهمه که شیخه میمیاده تولانی صحبت برمیدن این که حقیقت رشوه چیه آیا فقط در مقام در مقام قبوله غذایه به اصلا تضاوته یا نه شامل دیگران هم هم میشه مراد دیگر هم میشه و انشالله عبارت فوقها و عبارت لغوی انصافا هم عبارت داره به این یاد ای بالله خدا هم میکنیم ابحام را حلی که نیمی کنه بیشترم می کنه در درجه اول روایات رو می خونیم یه از اقوال لغوی ها لغوی هم موجود نیمتونه کاری بکنن این و راشی و مرتشی در حدیث رسول الله آمده ازای اینجا بحث لغوی جا داره چون این این لغت در حدیث آمده و این لفظ راشی و مرتشی در قرآن نیست اما در روایات هست آیا اینی در روایات اهم که اون در واقع یه چیز بوده در روایت سلطهه داده سنت به اصطلاح ما این بخشی که الان اگه بخون خود سنان مطارقه میتوان مکاسبه بخش مهم بحث رشوه اینه الان بخش مهم میشه اینه اون حقیقت رشوهی که محرمه به این دار در روایات عنوان رشوه آمده روایات ما در این که رشوه حرامه متظاثره بیش از حد باهی این جای هیچ بحث نداره حالا ما اول روایت چون یه مقداری در اینجا داریم از کتاب وصایل نکاتی هست من حواله میدم به کتاب جمع الا حدیثه که دقیق تریه مقداری در کتاب وصایل جند دوازده از این چاپ مروای ربانی که ابواب به حساب تجارت میشه ابواب مایک حسابه باب پنجش رو برای اذهنی از محرمات قرار داده که چشمه است حدیث شماره یک بعضی از نکات لطیف رو هم عرض رو کنید که اینشالله رو شد بشین حدیث شماره یک محمد ابن یعبوب کلین ان ادت من اصحاب و انسر این طریق خبیه و معروف به تعلیم نزیاد و طریق دوغم و, و احمد ابن محمد بکست رو خود یعنی ادت من اصحاب و انسر و ادت من اصحاب و ان احمد حالبکه این ادت با هم یکی یا دو سرشون اگه مشترک باشم برزیشون امتراد و یک صحبت هم کردم یه تکرار نداره این طریقش درست طریق احمد محمد ابن ایسای اشعری درست جمیعا ابن محبوب این هم تیشون از اجلات از اجلاس هم چه و تقرارن. هم سهلیم زیاده هم احمد اشعری از قوم رفتن به کوفه میراز کوفه رو به قوم وردن یکی هم کتاب محبوب نه کلینی هم که این مطلب رو میگه این ذرافت کلینیه یه حالا ها به این وقال لاحق ترسازم هر حال روزش کل میشه کلینی مخاطب من در دو نسخه که از کتاب ابن محدودار آمده یکی نسخه سر یکی نسخه احمد اشری نسخه احمد دردی که مبالاه اعتماد کاملا نسخه سعدیاً محل اشاره خیلی یعنی من احتمال میدم مرحوم کلینی خیلی رو کار در کار خودش که اینطور سهر کردون طریق بیاره که تأکید بکنه که در هر دان اینجور بوده. این ابن رعاب مشکل اول اینجا آسان است. در کتاب یه ابن رعاب آمده. ما از آن موردی نداریم علی ابن رعاب از امار ابن مروان حدیث نهار بکنم. منحسر به همین مورده. اشکال دوم قال سهل تا عبا جعفر امار ابن مروان جو در با من صادحه. جوزه اصحاب جفر باغل سامونالله علیه جه نشده و حتی جوزه در ده از اصحاب ساجب و موسن جفر سامونالله علیه ما ذکرشون کرده. ایشونه اوردن لذا این حدیث متأسفانه دو قسمتش مشکل داره آیا نظر کلینه اینه که ما خواهد بگه دفرست کنم من تخصیل من چی مشکل داره مشکل داره لخیل اونی که من دارم اینه کتاب محبوبش اینه ابن را آ هم اما هم عبی جعفر اما الان هر دوش مشکل داره هم ابن راقبش مشکل داره هم ابو جعفرش مشکل داره این دور شد این راجعه دیگه این رباره اگر همین باب پنج در اختیارتون باشه اینجا ما ماه ربانین توضیح نداره خوشیشون بگه هر توضیحات لسیفی در رباید در همین باب پنج این کتاب اینچالا مراجعه به فرمانی در شماله دوازده شیخی معال اخبار. شیخ صدوق در معال اخبار. ام محمد بن موسى بن متفکر این توصیف چندانی نشده جزء مشایخ مرحوم صدوق هست. مرحوم علامه ابن طابو تفسیرش کرده دیگه مبد نیست ان این فوسیهات متأخر قبول بشه مجموعه ای بعد نیست از مشایخ صدوقی که تفسیر خاصی ندارن جزء درجه یک حساب بشه انا عبدالله جعفر مراد همیریه که از بزرگان و عجله اصحابه و بسیار شعن بزرگواری داره انا احمد ابن محمد این همون احمد ارشریه این همون احمد ارشریه پس تا اینجا صدوق در احمد با کلیلی به هم رسیدن و از سر کشید انا ابن محبوب این هم همون کتاب کلیلی در این کتاب دارن ان عیوب ایوب نسخه کلی بود ابن را آب نسخه کلی ابن را آب بود اینجا ابی ایوبه بیه واقعا خودمانم متحدید این درست همه اون ابن را آب نیست؟ درست هم درست همه در ما این هم که مشهور شده که کلیمی حتما عذبت باشه از صدوق روشن نیست من معترضم صدوق گاگاه عمدن رباییاتی رو که کلیمی آورده میاره یکمی می هم مکنیستن و شاهر میکنن میخواد بگه شاید در نصفی کلیمی اشتباهی بوده سخت بوده کم زیاد بوده الان اگر دست ما که با ما رو دو هستیم رجالی حساب کنیم این صحیح عبیعیوبه همین نسخه صدوق بناس... سنده هده سنده هده علی از سره هده هستند هده بزرگوانند میکن علی بن از امار ابن مروان منداره الا همین مورد فقط این مورد فقط در کتاب کافی همین مورد در کتاب صدوق ابی ایوب همین مورد در کتاب صدو همین مورد از این نیست خوشن خب این مورد صدو از ایوب همو طریق هم هم. احمد از... از ابن از اون یه جایی منحس دارم دو جوره. یه دفعه فقط مثلا صدوق داره یا کلی داره. یه دفعه یک نسخه منحس نسخه نه دو تا روایت اون دو تا با اگه شما معجم آی خیلی دقیقه. یه اختلاف کت اختلاف کتب مثلا بین کافی با تهذیب مثلا یا کافی با فقید اختلاف نه روایت واحد از در یک نسخه کافی جو تو نسخه جوری هست اینجا دقت همه اینجا اختلاف نسخه هست. نه اختلاف مصدر شما می توانید چه اشخاص بعد اختلاف مصدر بود اشخاص نداره احمد عشعری ابن محبوب ان اما. این همینه این ابن رعاب این همینه اینجا هست احمد اشری علی ابن محبوب انا ابی ایوب ان امال پس این اختلاف نسخه نه اختلاف مسئله واشا این اختلاف نزخه. ما با یک نسخه نیست البته من احتمال میدم کلهی متعمد بوده که دو تا راه آورده میخوام بگم من نیست نسخه واسه این دونه هم دقت نخونید خیلی جایزه کله دو تا برده اگر کلینی سهل نزیاد تنها ورود ذکر نسخه سر احمد برده. هم خولگی برخشه نو سه سهل و برده اسم احمد همینجوری برده باشه فکر میکنن خیلی بریده شرم اینو نه من خود خودم ابن من چرا کنم اینطوری نو من اینه البته در این که عبد الله جعفر هنیری اینجا است ایشون بسیار بزرگوار مرحوم نجاشی میگه که وارد کوفه شد سال دویست و نواله ه دویست هفت کردن ببینیم اینجا چه هفته شمایه نکنیم و به جایی دیگه معنیم بردیم خیلی عجیبه چون میراز هایی که عبدالله بن جعفر همیره دید میرازها خود کوفه هست خنددار کتاب ها از کوفه عبدالله احمد جعفر تحمل کرده من که درست کوفه خودش باید تحقیق کرده. تعبیر نداشته این خیلی ذرافه چقدر از حال ما مقید بودن خب میراست خودشون و خودشون برگرمونده لیکن مزاله سم امنها اهلها و اکثر رو زیاده دشه بیدن این یعنی چی؟ یعنی اهل کوفه زنی اینی که از قومده از نزخه خودشون سهی کرده این نزخه عبدالله جفر همیری ولو از به کوفه است لیکن اینقدر صحیح و دقیق و درسته که از نزخه خود بگه منان که دردن اونها احله ها منابه که دو مقرده به خودشون این نسخه امتیابیش عبدالله آزمه جعفر تو آیا واقعا ایشان مثلا شاید التسیح این نسخه است؟ ما الان نمیبینیم الان یک دو نسخه از کتاب ابن محبوب پیش ما هست به حسن رضاهای سنده هم اشکاله شون محمد ابن مصد ابن المتوکل توصیه سریحی نداره اما این مثلی که اینجا آورده بهتر یه دو هم ان امواره مروان قال قال ابو عبدالله اینجا ابو جهفر هم نداره روشن تو این نسخه تو نسخه صدوق ابو جعفر هم نداره و این هم با شواهد بهتر میخوره هم این که ابو باشه با شواهد میخوره نه هم, هم این که ابو عیوب باشه لیکن من احتمال میدم با تمام این حرفا کلیهی مخواسته درافت کار خودش آسان نسخه من این کل بوده من چرا کنم که نسخه من یکیش ابن راه بوده یکی ابن عبا جعفر بوده نه میتونستم دست رزن ممکنم اضراجی در صند داری یعنی که صند سند, سند آورده احتمال دارم اگه اسم احمی شام نسخه کلیه احمد زیادی باشه این میخوره که ای از اشتباهات سر باشه میخواد نسه سر خرامی داشته اما چون اسم احمد هم اونجا آمده احتمال بله احتمال میدن مال سر باشه خرابی کن نسه سر الان اگه این البته این حدیث الان در بحث رشتار تو یه حدیث ممکنه مسلم باشه از سانده فرامان خوب دقت بکنیم ما که خیلی چیز میکنم من اینکه آشراف رو با کلیه حدیث شناسی. نتیجه الان این حدیث ابو عیو هم باشه سقرس ابو ابن راه هم باشه حدیث صحیحه این حدیث الان صحیحه لیکن معذانه کلی به نظر ما صحیحه هم نیست که صدوق آورده نه اونی که کلی می آورده یعنی عیو. ابو عیو باشه و ابو عبدالله هم باشه چجوری سندی که آورده نه اون از برشان برشان برشان برشان برشان کلینی واسون کلینی از تو از اصحاب دین، خصوص این نوثه همیریتی خوشون. باطحال مشایخ علامه همیری تو طریق کلینی نه همیری تو طریق کلینی نیست. منشاء شیخ ما همیری بود، نوثه دو سر. ما یورس که یورس کنه، به هر حال صدور بوندا فالان خوب این ظرافتی در حدیث شناسی فوق العاده ما تو قرارا ذهن ما هست که همینجوری میارن و به تسامح رد میکنن این درستی تو این ظرافت ها رو در نظر بگیریم بله متاسفانه متنشم فرع داره باز بله من اشعارم اون وقت این رو بله اینو در معان اخبار اینو ببخشید معان اخبار بله اه... عوا سنت حدیث این دیگه من جا وجا یک سخت من خدا رو خراب کرد تضیحش <تصفيق> میکنیم در کتاب در معان الاخبار از عبدالله الله بن جعفر ابن جعفل محمد بن الحسین علی الحسل معلوم عوا سنتش در یک متن اونم پیدا شده وا کرده یعنی در نصه ای که از محمد بن الحسین بن عبد الخواب زیات کوشی که از اجلای اصحاب اینشون در نسخه او داره ابو ایوب اونی که مفتیم نسخه اونم هست پس این با نسخه احمد فرداره در خیال ان عدیه انصد ان احمد نه احمد بود من اشتوار کرده تو خیال هم از احمد نغر کرده یعنی در مرحون صدو از دو مستر نغر در هر دو ابو ایوب از ابو عبدالله این هم بیک عجیب کاره یعنی اینجا صدو از دو صدیف که در مقابل کلین یک با کلین مشترک احمد یک طریقه محمد بن محسن که اختصاصی اون چیزی که سعدو آورده ابو ایوب است در هر دو یعنی در حقیقت ما الان چهار نسخه از, از این روا در چشم معروف داریم دو تا پیش کلینی دو تا پیش سعدو در اون دو تا پیش کلینی ابن رعب در اینجا ابو ایوب در اونجا ابو جعفر در اینجا ابو عبد الله شواهد خارجی هم عیل سعدو مثلا ابن رآف در خیلی از این مورد از اموار قهر اما جزء جز بر امام سادق امام کازمه جز از جهر بابر نیست شواهد معید با دو نسخهی مرموم صدوق اون وقت قال ابو عبدالله اون وقت صدوق خود صدوق هم اضافه بر این صدوق هم در کتاب تقیی نقل شرمین حدیث رو. دقیق می کنیم مرگوم شیخ صدوق در کتاب اینجا نیورده نه اینجا نیورده اما نه در اونجا هم صدوق که نهار کرده مثل همین شماره دوازده. حالا اجازه رو هم بخونم این بباید این طوریه قال ابو عبدالله علیه السلام من متن اول کلی نیز کنم. یه مقدار زیاده مثل کلو شیئن قل من علی امام خواه به سختون هرچی که اینسان از امام دزدی بکنه خیانت بکنه از بیت المال این و اکل و مال الیتین و شمیهی سختون و از سخت و انگاه اون کثیره منها اجور الهواجر نست جیرون و سمن الخان، و النبیر نبیر اطور خن و المسکر و ربا ربا اطور سمن اجور و ربا بعد البیان فا اما رشاف الهوف یا رشاف الهوف فه این زالی کل خف بالله العزی جل اسموها به رسولی ای این مفضی بوده که مرهوم کلینی نقل کرده اما نقلی رو که مرحوم صدوق داره ببینید یکی از نکات مهم اینه در نقل صدوق غیر از حالا اون که سند و ابو جعفر و سحتو انواع اون کثیره مثل همون متن مرحوم کلینیه از سحتو انواع اون کثیره منها ما عسیب من اعمال الغلات ظلمه این تو متن کلینی نمیانده نه درست کنداشو باید بیردشه اون چیمی که الان مهمه لمنه ها اجور رو قضا این خیلی مشکلیه. این که در ما در بحث به اصطلاح رشده یه داریم این از اینجا معلوم میشه اجور رو قضا هم کلن جزوه حرام جزو صده یعنی اگر دو نفر رفتن پیش قاضی پیش شخصی آسوی یا غذاست ما هر بزن ست چاندید شما بین ما به حق و صحیح. که این تصواری این هم حرامه نیم دیسته هستان بیدم به من روح میگم آ شما بیا داور باش این ما میگم من وقت دارم میگم با این سرسان من بیدم سرسان بیشون میگم تفتیقه دعاون نه حالا مشکل سرسان نمیتونیم فقیه باشه که وزیره آزیه تحتیم از کجا حالا اون افتاداشون که دیده از ما هم اون از بهتون مولا گوش میشید عرض اینجا, اش... اینجا شامل جوالم میشه مولا خصوص اجرت نیست. دقیقه که میشه مخوام بگم مشکل کجاست؟ چون تو هست اون پولی که شما میگیم به نفر تونه بکنه اما پولی شما که کسا حقوق بکنه للام الله حکم بکنه به نبه من به نبه آقا که این میگو که اصلا اخذ اجرت در قضاوت جایز توی این به باید داره رننه ها و جور رو حالا معلوم شد مرحوم کلینی کلن این سطح و حضر کرده این بگیم کلینی در کتاب کلینی نگامده پس معلوم شد که ما وقتی مستر رو روش کار کردیم معلوم شد که با واقعا اختلاف دارم یک جامی از نسخه ای ابن محبوب در رشنش رو از نسخه ابن محبود در قم دو محن موجود بوده که هم سندن گیر داشتند هم در امامش گیر داشتند هم مدنم گیر داشتند ن یطلبجا که یکیش به درد مانعناهی میخوره اون وقت من این شو باز برگیشون وقت آمون شدیم برگی حدیثون محمد و آلی